رخداد، نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، به نام خدا با عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان گرامی در قسمت 17 برنامه رخداد در خدمت شما هستیم تا در قسمت قسمت گذشته به نقد و همچنین واکنش حالا لزوماً بعضی‌هاشون نقد نبود بر در واقع تایید نظریه داروین بود پرداختیم یه جمعبندی کلی بنده از می‌کنم و در خدمت جناب ایران مهر بود در مورد مسئله‌ای که ایشون در جلسه قبلی ارز کردن فرمودن در مورد دیدگاه ایرانیان از دیرباز نسبت به قضیه تولین مثل دستور تیتوار روی هشت قسمت من اینا رو تقسیم کردم نوع واکنش جهان اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام نسبت به نظریه تکامل ها رو من خیلی تیتوار ارزم کنم و در خدمت شما ایرانیان خواهم بود یک نظریه بین خلقت از دیدگاه قرآن و نظریه تکاملی داروین قائل به سازگاری هستش <تصفيق> که اینجا این نظریه متعلق به جنابای مرحوم دکتر یدالله صحابی هستش دومین نظریه دیگر قائل به ناسازگاری مطلق میان یعنی دیدگاه اسلام و نظریه تکامل هستش که نظریه مرحوم علامه تبا صاحب تفسیر میزان هستش نظریه سوم نظریه برخی از شاگردان علامه هستش که قائل به ناسازگاری بین دو دیدگاه علم و دین در خصوص خلقت انسان هستند ولی معتقدند که در صورت اثبات شدن نظریه تکامل باید فهم سابق خودمان از آیات قرآن در باب خلقت انسان رو تغییر بدین چهارم این نهله فکری هم باز هم برخی از شاگردان مرحوم علامه هستند که به ناسازگاری بین دو دیدگاه علم و دین در خصوص خلقت انسان هستند ولی راه حلشون در رفع ناسازگاری اینه که در صورت اثبات شدن نظری تکامل میگوییم که خلقت انسان یک استثناء و از باب است اشکالی که بر این دیدگاه وارد شده اینه که این نظریه در مورد خود انسان است و دیدگاه مذکور خود انسان رو استثناء میکنه از بقیه موجودات پنجمین نظریه دیدگاه دیگری که در خصوص این میگه که قرآن دو دسته آیه درباره خلقت وجود داره یک دسته خلقت را تکاملی و دست دیگر خلقت را ثبوتی معرفی میکنن و لذا از قرآن هم میتوان برداشت تکاملی و هم برداشت ثبوتی رو انجام داد ششمی متق... برخی معتقدند که دین در رابطه با چگونگی خلقت انسان ساکته و نظری نداره و میدان رو برای علوم تجربی خالی نگه... خالی گذاشته به. نظری هفتم هم که برخی مثل دکتر شریعتی زبان قرآن رو در آیات خلقت سمبولیک و نمادی میدونه و راه رو برای تعویل گذاشته نظری هش... هشتم هم برخی مثل دکتر قراملی که معتقد که زبان قرآن علمی تجربی نیست و قرآن در رابطه با خلقت انسان موضع تجربی نداره مثلا میگیم که انی خالق و, و منطین اما نمیگه تحولی ثبوتی یا تدریجی و یا نا ناگهانی بلکه حالت همون دیگه منو دکتر شریعتی گفت سمبولیک هستش که در این مورد میتونین من ارجاع میدم عزیز رو به کتاب موزه علم و دین در خلقت انسان نوشته آقای دکتر قراملکی مراجعه بکنن و در این مورد نظریات مختلف رو میتونن استخراج بکنن جناب آقای ایران مهر در خدمت شما هستیم همونطور که اولداربون فرمایش داشت شما رو در مورد دیدگاه ایرانیان از آغاز خایش. تا کنون در واره مسئله مساله تولید مثل رو در خدمت شما هست ارز میکنم آید دکتر پیش از اینکه من اشاره کوتاهی دوباره بکنم علی که یادآوری بشه آ ما چون زیاد مقاله می نویسم میگم خوانندگان اینجا می میگم خوانندگان بوزش می خوام پیش از اینکه که من بیام یک کوتاه بگم که ما در غربیات چی گفتیم بعد نظری ایرانی رو هزاران سال قبل از اون بگیم من این چون نقد نظرات اسلامی رو گفتیم و بعضیش خیلی جالب بود به یک نکتر رو مشخص کنم که من اون پرسش همون یکی دونشست پیش کردم تو همین راستا بود اونم اینی که اول میان یک ادهی حالا هر کسی تو جهان یک فرض یا بهتر بگیم برداشت غلط خودشون از یک فرض رو میگیرن بعد اونو محکوم و نفیش میکنن بعد میگن آقا دیگه کل فرضی رو ما رد کردیم درست همینطور که گفتم برای آمه مردم نظر داروین اولین چیزی که یادشون میفته یک دونه میمونه با دم دراز رو درخت بعدش هم یک عده موافق این قضیه میشن که ما بچه ها و فرزندان و نسلای های اون میمونه ایم یک عده هم مخالفش میشن. شروع میکنم با هم دیگه به بحث کردن. من... یه میگن ما موافق داروین میشیم، یه خالف. میگن اولا که علم و دانش رو به پیش رفت. من... آقای داروین آیداروین سال پیش زندگی میکرده یک چیزایی گفت، حالا من... از کجا گفت؟ اونو بعداً بحث میکنیم یک پرسش من میکنم مثلا میگن انسان از میمونه. یا همون مانکی که در انگلیسی میگن. بله. من... الان هیومن ساپینس ساپینسیم دیگه. انسان نوین. درست. من یک پرسش میکنم. از حضرت عالی به عنوان یک شخص مثلا آقای دکتر محبیام فرض کنیم الان نیست یک آدم عادی از این جامعه بله. من میپرسم الان به نظر شما گوریلا از اورانگوتانا درست شدن یا اورانگوتانا از گوریلا واقعا نظری مشخصی اصلا غیر علمیه غیر علمیه دقیقا. اصلا قلطه. مثلا الان شامپانزه ها از گیبونا درست شدن یا گیبونا از شامپانزا؟ اصلا به یک زیست شناس بگیم اینو میخنده به بله دقیقاً اصلا یعنی چی هیومن ساپین ساپینس از مانکی درست شده یا مثلا مانکی از هیومن ساپینت ساپی... اصلا این فاجه است هرکس که این معلف زیستشناسی رو خونده باشه اصلا این پرسش در تا باهم. فیلم کمدی از چاری شاپنی خنده بله <تصفح> ما درباره راسته نخستی ها صحبت کردیم که از پستانداران هستن درست. این نخستی ها یا پریماتا ها اینها بعد اصلا خیلی داستان سنگین و عجیبی دارن اینها در چندین میلیون سال پیش شاخه لیمورها از اینها جدا میشن بعد یک شاخه از ها از اینها در یک شاخه دیگه جدا میشن ها حدود بیش از 20 میلیون سال پیش به دو خانواده بزرگ تقسیم میشن خانواده گیبون ها حالا نگاه کنین پیش از این رخداد پیش از این رخ داد یا میمون ها از خانواده هومانیده ها جدا شده بودن یعنی هومانیده ها میشن یه شاخه ها میشن یه شاخه اصلا لیمور هم که قبلا از کل این دوتا شاخه جدا شده, شده بود یعنی اون میمونی که مورد نظر ماست بیش از بیش سی میلیون سال پیش از خانواده هومانیده ها جدا, جدا شده, شده بود خدا حافظ شما تکامیل تکامل خودش داشته میکرد. ما از اون موقع جدا شدیم تازه بعد اون حدود 20 میلیون سال پیش ما و خانواده بزرگ گیبون ها که همونیده رو تشکیل می دادیم از هم دوباره جدا شدیم به دو شاخه با... کلی و بزرگ تو این بسا بریماته ها نخستی ها دومدار و بیدم بی... تش... یعنی همونیده های دومدار یا گیبون ها همونیده بیدم که حالا همون همونیده های بیدم یا کپی ها یا انسان نما حالا اینا اومدن چارده میلیون سال پیش هومونیده ها یه شاخشون رفت به یک طرف اورانگوتانها از اینا جدا شدن. اون جانوران را دستای بلندی دارن پشمه زرد روشنی دارن تو آسیه جنوب شرقین. بعد باز اینا موندن یعنی اورانگوتان مسیر خودشون چارده میلیون سال پیش تهیه کردن. کمتر از ده میلیون سال پیش دوباره شاخه اصلی اون هومونیده ها موندن گوریل ها از اینها جدا شدن چند میلیون سال پیش این آخرین تقسیم فعلا انجام شده شامپانزه ها یه طرف موندن این همه بیدو منو و اینجا هیومن این طرف موند حالا هیومن بعد دیگه شروع کرد تازه تکامل شروع شد یعنی با یک مغز حدود 400 سی سی بله که داریم سنگواره هاشو میبینیم قبل از انسان های اولیه اومد تا رسید دیگه به دوران پاریزی سنگی و چی و چی و چی و مغزش رسید به هجم سیسی سی و شد انسان کرومانیان از حدود 110 هزار ساله پیشه بنابراین اینی که <تصفح> اگه بخواییم نظریه داروین رو بر این مبنا رد کنیم که انسان از میمونه با. که اصلا این یک لطیفه تاریخیه اگه نمیخواییم به جاهای دیگرش ایراد بگیریم بله خیلی ایراد داره میشه ایراد گرفت. من این طولانی رو گفتم که همیشه این مغلته میشه که اول تا میگه داروین میگن ها همونی که آدم از میمون درست شد مثلا قلطه اصلا مس... اصلا. مسئله قلطه خب حالا ما بلی که داشتیم یه جایی دیگه بحث میکردیم من خیلی کوتاه دیگه از رو متن نمیخونم فقط میگم که ما اون یک نشست گفتم که تصور غربی از توریده مثل مثلا گفتیم که تصورشون بیشتر به افسانه و خرافات خراف مثلا بغراد میگه که منی از همه بخ... همه بخش‌های بدن مرد از جمله بخش‌های نرم و سخت ترشح میشه بعد ارسطو میگه که من ارسطو منی رو حاصل ترشحات خون میدونه بعد این انقطاع پیش میاد و اون یونارو رو باستان خاموش میشه شمعش دوباره از دوران نوزایی که اینا با شرقی دوباره آشنا میشن حالا دو گراف در قرن هفته تخمک رو میبینه و تازه اینجا هنوز فکر میکردن تو تخمک یک آدمکیه بلنه. که بعد روشت میکنه بعد صده هیجده که اسپرمو دیدن جای آدمکر رو عوض کردن گفتن آدمکه تو اسپرم هست. میاد تو کشتار زن بعد دیگه وولف بود که این گشنگیری تخمک و اسپرمو تونست مشاهده کنه و اینو ای تقریبا به امروزی در بیاره حالا ما میخوایم بگیم که 800 سال پیش از ولف ببینیم حکیم عبالغاسم فردوسی تو شاهنامه درباره باره چی رو چی میگه؟ معلم میدونیم که شاهنامه به نظم درآمده درآمده‌ی خدای پهلوی که خود فردوسی در یه بخشی میگه که اینها از روی متنهایی که دو هزار سال پیش از من بازنویسی شدن و به دست ما رسیده من اینها رو سرودم سرود. پی از نظم کاخی بلند همه فکر می‌کنن داستان‌ها رو فردوسی از خودش درآورده کتابهایی بوده به پهلوی به نصر همون شاهنامه ابومنسوری که به خودش میگه تبایه بود و منصور بود با سه سه نقطه میگه نصر بود بد. حالا اون شاهنام عبوب منصوری داستان خاص خود داره که اینجا اصلا مورد بحث ما نیست درباره که خسرو ببینیم چه داستانی ما داشتیم میگه که نژات از دو سو این نیک پی حالا این نژات آی دکتر بعدم بحث میکنیم معنای نژاد اینجا مثل معنای هنر در ادبیات فارسیه میدونین که هنر در ادبیات فارسی معناش خط و نقاشی و شعر و موسیقی نیست میگه آقا شما مثلا حافظ میگه آقا شما مثلا هنر ای درسته. کار رو داری؟ هنر جنگ رو داری؟ یعنی یک مجموعه ای از توانایی ها. ها و ها اوناست این نجاد هم تقریبا مثالش مثل اونه منظور این نجادی که الان بعد جنگ جهانی دوم تو فارسی باب شده نیست نیست یه چیز دیگه است میگه نجاد از دو سو دارد این نیک پی زه افراسیاب و زه کاووس کی؟ ای. خب افراسیاب و کاووس تقریبا پسر همه بودن دیگه افراسیاب پسر پشنگ و پسر تور پسر فریدون کاووس هم از این ور می رسیده به ایرج, ایرج و, و پسر فریدون حالا ببینید ویژگی های شاهانه دو شاه از فرنگیس که مادر بوده دخت افراسیاب و سیاوش که پدر بوده پور کیکاووس پسر کیکاووس به کیخسرو میرسه بله. متوجه موضوع شده مو یعنی, واقع یعنی در واقع... دو تا یعنی پنجاه پنجاه در نظر گرفته رسیدن صفتها بله. به کیخسرو اصلا. رو چیزی که امروز دانش ژنتیک داره میگه داره نه میگه نمیدونم اسپر... ماد... یک... بد... یک آدمکی تو اسپرم چی آب منی از ترشاد کجا نه نه کاملا کش... زند کشتار مرده ایجازی حرفا نیست میگه که نجاد از دو سو دارد این نیک پین پی. دقیقا پنجا پنجاش میکنه بعد جالبه نام مادر رو هم پیش از پدر میاره عجب ز و، یعنی طرف مادری و خس... ز کاووسکه یعنی ب... مادر حتی یک پیشقدمی و پیشگامی میده خدمتون بگم که حالا فقط در باری تولید مس که ما گفتیم که ایرانیات چی؟ تصور میکردن اینجا خیلی کوتاه من میخونم در داستان جمشید جمشید اوستایش میشه یمه یه یمه به معنای همزاد خشایت هم که الان شده شید در واژه داریم داری یعنی روشنانی این دوران تابندگی تبار انسانهای قلم روی میانی. یعنی بعد دوران تهمورس که تونستیم بر عوامل طبیعی که اونجا با بنام نام برده شده اینا به چنگ میان که بعد بگیم که جمشید با کمک دیوان بله. اون کار که انجام میده اینا استور است حالا بعد توضیح داره که اینجا جاش نیست ما میرسیم <تصفح> به اون مسئله بالاخره وقتی که وارد روند تاریخی شدیم قطعا خواهیم بله. شد بله. که بله. از اینجا از نمیشه بله. هم زیاد ازش. درنگ بله. بله. البته از اتاق فرمانم <تصفح> این بخش بخشم به پایان رسید همین قسمت اتفاقا نگه داریم بره. چون بحث خیلی جاریبی وارد هستش واردش هم نشدیم دیگه واردش هم نشدیم اتفاقا خوشبختانه آغاز قسمت 18 واردش خواهیم شد به امید خدا قسمت 17 هم در اینجا به پایان می رسونیم از, خدا... از شنوندگان گرامی بابت حسیلهی که برای گوشتادم برنامه به خرج دادن سپاس کذاریم خدا یارو ن